کارگری برای من کار کرده است و الان معلوم نیست که کجا هست مزدش را نگرفته است حالا مزدش مانده است مزدش چگونه پرداخت پرداخلین در زمین کارگر پاکستانی هست و سه سار است حالا کارگر کار کرده و رفته متواری هست اگر هیچ کس از بستگانش هم معلوم نیست و کسی هم نمی کجا هست آدرسی نیست این پوله هاشو بده به بفقیری بدهد و ثوابش را ببخشد یکی به صاحبش بگوید که این هم خدایا مزد ای را به صاحبش برسان هرگاه اگر دوباره بعد از ده سال 20 سال بعد دوباره خودش اومد برای مزدش، باید موزدش را شما پرداخت بش بگی من دادم بفغیری اگر قبول کردی هیچی اگر قبول نکرد موزدها مال شما و پولش را دوباره پس بدهید. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهو کنیز خرید و بعد از خرید آن صاحب کنیز گم شد یک سال صبر کرد یک سال صبر کرد نا آمد بعد از یک سال حالا روزانه کم کم میده به فقرا فرمودند که اگر نا آمد اینها مال استری فلاری دارم میده اگر اومد فلی و علیه فلی و علیه این ثواب مال من و مقبول شو میدم اگر دوباره پیدا شد ثوابش مال خودم پولش و مال خودم، پولش رو میدم علی این دوری اگر میتونید پس اینها رو بدهید صغیری و اگر دوباره آن باید از خودتان با اون را پرداخت بکنیم اما در این مورد حدیث دیگر هم بخونم در زمان بنی اسرائیلی ها و امت های داخل سی بخار حدیثی هست حدیث سورانی هست که بار بار خوندی حدیث غا غار مشهور هست شخصی کارگری رو گرفت که با موزش مقدار برنج بود الکار کن مقدار برنج بتمیدم وقتی کار تمام کرد گذاشت و رفت گذاشت و رفت مزدشو نگرفت این هم دید که مزدو نگرفت. همون پولو گرفت با اون پول کار کرد. با اون سرمایه گذاری کرد. اوذادی پول رفت بالا، ال پول بالا رفت و طلا نقره، گوسفن، گاو شطور جمع کرد. با همون پول کار می کرد میخرید کار میکرد، کرد شطور می کرد گاو می طلا نقره، سالها بعد یک روزی دوبال مزدش اومد گفت فلانی مزده رو نمیدی گفت اینها رو بگیر اینها همین مزده تو اند این گاوشو تو رو گوسفندارو بگی بتلانوغرا این مال تو بگیری رو گفت مسخره نکن حق منو بده گفت نه مسخره نمیکن حقت هست. این آقا هم نامردی نکرد تمامو گرفت بود برد حتی برای این یک گوسفند هم نگذاشت هیچچ نگذاشت این تلاش کردی زحمت کشیدی گفت نه همه رو گرفت بعد گفت بار حالا داخل غاری این آقا رفت سنگ و سنگی درو غار رو گرفت اونجا گو بار اگر اون کار من اون روز به خاطر رضایت شما بوده پس من از این مصیبت بیرون کن الله رب العالمین اون از اون مصیبت بیرون کرد پس اگر میتونی کار انجام میدی با پورےش و اگر اومد هم شما جزء همونا باشید که چنین کار انجام داده در umat گذاشته. گذشته